خیلی نگران حق و, و بیت المالی مالی که برگردنم هست هستم اما دقیقا نمیان آم که چه حقوقی از چه کسانی و چه مقدار برگردنم هست عیبی نداره همین که نگران هست یا موازویت میکنه کافیه من که شک داره به هست یا نه به گردنش نیست خوصه نیازی صدقهی بدم خیالم راحت بشه عیب نداره سالی صد هزار تومن رد مظالم بده